الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 دوستان اینجا تشکیل دادند الله تبارک و تعالی این جوانان عزیزی که در این مراسم عقدشان خوانده می شود و آغاز زندگی مشترک را می کنند در طول زندگی الله تعالی اینها را موفق و معید بکنه و هم به اینها و هم به همه‌ی امت اسلامی الله تبارک و تعالی توفیق بندگی عنایت بکند خدای تبارک و تعالی در زندگی به انسان نعمت‌های گناگونی عنایت کرده جوانی شاید یکی از بالاترین نعمتهای رب العالمین که الله تعالی انسان در قطعی از عمرش عنایت میکنه توصیه رب العالمین به انسان در طول زندگی و در طول عمر بر اینه که از غفلت و از گناه و از معصيات دوری ببارسد. قرآنی فرماید که یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. این توصیه است که الله تبارك و تعالى در حمایه ابعاد عاد زندگی انسان را سفارش میکنه که ما زندگی را با تقوى زندگی را با خدا ترسی چنان سفری بکنیم که روزی کے انسان به ملاقات پروردگار میرے با ایمان و با یقین و با اسلام به ملاقات پروردگار میرے من ارز کردم که زندگی جوانی و دوران جوانی عمر یکی از بالاترین نعمت‌های رب العالمین چرا چون در این مقطع انسان به اوج قدرت خودش میرسه تمناها و آرزوهای مختلف در وجود انسان هویدا میشه این توان این قدرت را انسان چگونه استفاده بکنه و چگونه ازش بهره بگیره این بر گرده به تربیت خانوادگی انسان. اگر تربیت انسان از ابتدا یک تربیت صحیح و یک تربیت دینی باشه نیروی جوانی انسان برای انسان جاودانگی پیدا میکنه. و اگر تربیت انسان از ابتدا تربیت دینی نباشه نیروی جوانی برای انسان مشکلات می آفرینه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنه جوانی بود که زندگی مردم مدینه را متحول کرد زندگی مردم مدینه را تغییر داد زندگی مردم مدینه را آماده سخت برای اینکه که پذیرای محمد رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بش چرا؟ چون تربیتش را با قرآن عظیم الشان و تعریمات محمد رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم آغاز کرد و از روزی که به دامن قرآن عظیم الشان و به اسلام چنگ زد تلاش کرد که خود را با پروردگار وصل لذا دوستان گرامی یکی از آرزوهای انسان در دوران جوانی انجام مراسم عروسی است من دعای خیر می کنم برای عزیزانی که برنامه ای برنامه ریزی کردن تا مسلمانان دوره هم جمع بشن و یکی از سنتهای ثنیه حضرت رسول صلی علیه و وسلم را اون هم با سادگی و زمینه افت و پاکدامنی جوانان رو فراهم بکنن نکاح الله تبارک و تعالی برکات بسیار عدیده ای برای نکاح گذاشته وقتی بین دو انسان و بین دو فرد خطبه نکاح خونده میشه وقتی بین اینها ای ایجاب و قبول میشه اولین برکتش اینه که اینا با همدیگه خیشاون میشن اینها غمخاری یکدیگر میشن اینها شریک زندگی یک دیگر میشن هیچ برکتی در روابط جنسی مانند نکاح وجود نداره دو انسانی که برخلاف دستور خدا و رسول برای اتفاع غریزه شهوانی خود کنار هم قرار می گیرن این ها خیشاوند یک دیگر نمیشن. غمخار یک دیگر نمیشن. شریک زندگی یک دیگر نمیشن. بلکه به مسابه بلاتش به بلاتش به مسابه دو حیوان که برای ارزا غرائز نفسانی کنار هم جمع شدن هیچ فرقی بین این دو نیست با یک تفاوتی وجود داره اون دو حیوان که وقتی میخوان غریزه نفسانی و شهوانی خودشون را براورد بکنن از دیگران نمی ترسن. احساس آر و احساس ننگ از دیگران نمی کنن. اما این دو انسانی که برخلاف دستور خدا و رسول میخوان مسیر را حرکت بکنن تمام بدنشون را حراس میگیره که نکنه کسی من را ببینه در حالت زنا. اون زن میترسه اون مرد میترسه که اگر ما را در حالت زنا گرفتن ما را میکشن ما را سنگسار میکنن اگر این رابطه نمشروع اونها سبب بلاتش فرزندی بشه اینا از وجود این فرزند میترسن همش در فکرن که چگونه این فرزند را ساقط بکنن و اگر العیاض الله، العیاض الله، این عمل شنی منجربه تولد فرزندی شد در تلاشن که این را ببرن تو زبالدان بیاندازن در تلاشن که این را ببرن زنده گور بکنن در تلاشن که این را ببرن اما از اون طرف وقتی نکاح مطرح است میبینیم جلسات زیبا و مبارکی مثل این جلسه میمون برگزار میشه افرادی که در اون جلسه شرکت میکنن احساس عزت میکنن هم دعوت شدگان و مدعوین احساس عزت میکنند هم دعوت کنندگان و دعیان احساس عزت میکنند هم خانواده پسر احساس عزت میکنه هم خانواده دختر احساس عزت میکنه این جز برکات نکاحه نکاح وقتی بین دو خانواده برقرار می شه الله تبارک و تعالی من آیه‌ای را که خدمتتون تلاوت کردم الله تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق زوجها و خلق منها و جا واب من همما ررجم کسی وقتی برقرار میشه بین دو خانواده این باعث این میشه که انسان صاحب پدر مشخصی است صاحب مادر مشخصی است این پدر و مادر باعث میشه که این انسان صاحب خواهر بشه صاحب برادر بشه از نتیجه این نکاح انسان صاحب پدر بزرگ مادر بزرگ، صاحب ما صاحب خاله نسلی به وجود می آید الله تبارک و تعالی میگه من شما را از این نفت میآفرینم. ادامه ش وقتی انسان نگاه میکنه به برکت این نکا، انسان صاحب یک تایفه میشه صاحب یک فامیل میشه صاحب یک عشیره میشه. ولی این همه جوز نگاه هست که الله تبارک و تعالی گذاشته. لازم این کارچیه از یزانی گرامی اینا وقتی انسان ما ماهیت نگاره انسان نگاه میکنه. میبینید نعمت پروردگارش نعمت شکر میخواهد شکر نعمت اینه که انسان اسباب آسان نکار فراهم بکنه برای جوانان. اگر ما بخواییم در جامعه ایماء و در جامعه اسلامی زنا ریشکن بشه لازماش اینه که نکار حاکم بشه بر جامعه و حاکم شدن نکار که مغدوره زمانی که زمینه ای آسان نکار برای جوانان فراهم بشه در, بعضی در بعض از مناطق متاسفانه در باب نکا اونقدر سنگ اندازی میکنن که امکان برقراری نکا برای دو جوان برقرار نه اینقدر دست لباس باید بیاره اینقدر طلا باید بیاره ماریهای بسیار سنگین مطرح میکنن این یک طرف قضیه است بعد وقتی برای اجرای عروسی زمان فرارسیدن من یک خاطره ایر را خدمت شما شاید حدود سه چار مها قبل بود که من زهر تو خانه نشسته بودم و بچه ای آمد گفت در کسی کار داره من تازه از مسجد اومده بودم من گفتم من خستم و دوباره این بچه آمد گفت اینا یه مرد و زنی خیلی اصرار دارند میگن ما باید فلانی را حتما ببینیم من, ببینی من گفتم حالا بند خدا چه کاری داره گفتم بیایم بعد دیدم که پسر و دختر جوانی و امادن خانه و گفتن که ما نامزد یک دیگه بودیم اخد ما خانده شده ولی وقتی خواستیم که عروسی بکنیم پسر میگفت من سه میلیون تومن پول داشتم به خانواده دختر که مراجعه کردم گفته که نخیر این سه میلیون تومن پول این تکافوی خرج عروسی شما رو نمی کنیم ما میخواییم فلان تالار عروسی را بگیریم و فلان جا میخوایم جشن بگیریم و این پول چیزی نیست گفت من شش ماه پیش خانواده دختر رفت و آمد کردم و نتوانستم عروسی بکنم و بلا تشمیه بلا زمین گفت من با هم فرار کردیم و حالا هم پدر من میگوید که تو را میکشم و هم پدر دختر میگم من تور رو میکشم حالا اینا که با هم نامزد بودن ولی چه اندازه خانواده های دیگه فرزندان دیگه دختران دیگر پسران دیگر الایاذ بالله الایاذ بالله وادر به جریانات اینجوری نمیشه و بعد دو خانواده بعد دو فامیل سرشون پایین بیفته برای چی برای اینکه سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت نکند روزی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در سفر بودن شانه پیغمبر خیلی بالاتر از این عزیزان گرامی ولی برای اینکه یاد بدن که نکاح هر اندازه ساده باشه نکاح هر اندازه بی تکلف باشه نکاح هر اندازه روان باشه همون اندازه موازلات اجتماعی و زنا و گناه و معصیت از جامعه دور میشه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت بلال را صدا کردند گفت در سفر بود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر بودند گفت صدا بزن هر که با خودش هر چی داره بیاره کسی نانی آورد و کسی گندم بریانی آورد و کسی خورمای آورد مقداری از این آذوقه‌ای که مر... همراهان رسول الله در سفر همراه داشتند مقدار روی چادر جمع کردند و بعد حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که دعوت کنید اینها را این خرجه عروسی محمد رسول الله است همونجا در همونجا خطبه نکاح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بیابان خونده شد و با این وضعیت پیامبر ما ازدواج کردند حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت صلی الله عليه وسلم میخواستن می‌خواستن جگر گوشه خودشون را حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی به نکای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ در بیارن با یه جهیزیه بسیار مختصر با یک کاسه با یه تخت خواب با یه چادری که از تفا بدن و وجودش گرفته بود به خانه بخت برساله شما امروز تو دنیا انسانی را پیدا بکنید که خوشبختر از حضرت علی باشه، خوشبختر از حضرت فاطمه باشه. انسان اینا شو پیدا بکنی که او سعادت از حضرت رسول صلی الله و رسلان باشه، سعادت از حضرت عایشه استدیکار رضی الله و تا باشه. اینا انسان هایی که بسیار با بس سادگی زندگی مشترک را آغاز کردن. ولی یکی از شکر نعمت نکایی نکه زمینه آسان نکار برای جوانان فراهم بکنید تا اینا سن ازدواج بالا نره نباشه که دختر 30 سال 35 سال نشسته و امکان عروسیش نیست پسری 25 سال 30 سال نشسته امکان عروسیش نیست برای چی برای اینکه اون مسائلی که نیاز زندگی نیست اون مسائلی که اجبار زندگی نیست اونها رو میان سر راه قرار میدن و میگن باید یا برای اجرای مراسم عروسی می گه فیلم بگیرندو بی اورگ بیارندو دوهل بیارندو توی خانه امکان نداره باید به فلان رستوران بریم و خیلی از این مسائل که باعث میشه سروران گرامی جوانان به انحراف کشیده بشن جوانان به گناه کشیده بشن جوانان به معصیت کشیده بشن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و فرمود بی تک پر برکت ترین نکاح نکاح هست که کہ درو تکلف نہ ہو کم باشه اسباب زندگی را آسان بگین. حالا اگر کسی را اللہ رب العزت نعمتی داده دریغ از خودش نکنه نعمت را اگر کسی توانایی داره حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در اون زمانی که مشکلات بود فرمود عالم ولو بشات این را هم پیغمبر اجازه داده که اگر کسی توانایی داشته باشه توانایی مالی داشته باشه دوستان و خیشواندان و و دعوت بکنه اما اگر نداشت نباید اونقدر محدودیت باشه که این فرد فردا باید وادار بشه برای دزدی بکنه این جوان وادار بشه برای تشبیه مواد فروشی بکنه این جوان وادار بشه برای غارتگری بکنه که بخواد خرج عروسی رو تامین بکنه بلکه جلسات اینچونینی و پرخیر و برکت که بچه ها بتوانند کنار هم قرار بگیرند و از مثلا همین عزیزان علمان نمیدانم چند نفرن یا پنج نفرن یا بیشترن یا کمترن که مراسم عروسیشون گرفته شده اگر می‌خواستن با تکلف بکنن شاید همین عروسی ها سر به ها و سر به چندی میلیون هزینه برمی‌داشت ولی توانستن همین کار خیر را همین کار صالح را همین کار مفید را با کمترین هزینه اینها آغاز زندگی بکنن در ایزای اون هزینه ها و اسرافگری‌هایی که در باز از مراسم در باز از عروسی‌ها انجام می‌گیره این هره ما باید بیاییم و مسیر زندگی فرزندانمون را عوض بکنیم. همینطوری که ازدواج و خانه و مسکن نیاز بچه های جامعه ماست. سواد و تحصیل هم نیاز بچه های جامعه ماست. باید بخشی از زندگی های و بخشی از حزینه های اضافیر در راستای تحصیل و در راستای سواد و در راستای علم و در راستای دانش فرزندان بکار ببریم از اصرافگری ها من هم اونجا که من مثالی ارز کردم یک خاطره تلخ دیگه خدمت شما بیان بکنم من به از شهرستان ها سرم افتاد و اونجا تعداد زیادی از مردم بلوچ و اهل سنت زندگی میکردن مسجدی هم ندرشدن حالا ما را از ظاهدان دعوت کرده بوده اونجا به عنوان فامیل و خیشاون اونجا شب وقت نوبت عروسی رسید و باید بری فلان تالار اونجا صاحب خورد اونجا که رفتیم ما شاء اورگی هم آوردند حالا شما هم عزیزان دعوت کردید اون و هم دعوت کرده بودند من گفتم این قضیه چیه گفت که مولوی صاحب اگر شما ناراحت میشید شما را یه جای دیگه میبریم اینا هم من گفتم اون بهشتی که من تنها برم من نمیرم اگر قراره که نه همه به جهنم برن من هم, هم باید با یا اینکه شما این عروسی رو این اورگ رو تعطیل بکنید یا اینکه این همه اونایی که با من عمله همه رو من برمیگردونم چرا گاهی اینطوری توجیح بشه یک ما جوانان ما که بازوی امامی توانان جوانانی که آبروی دین ما میتوانن باشن ما این رو به حال خودمون روا بکنیم که اینا بشینن بلات بشه تو بعضی از مجالس شراب بشه تریاک بشه دال بشه رقص بشه گناه بشه معصیت بشه و بعد تعبیر کنیم این جوانه این جوان نعمت رب العالمینه این جوان سرمایه ماست چرا این جوان سرازیر جهنم بشه این پدر این پدر نمازش به درد چی میخوره اون مولوی وعزش به درد چی میخوره که زنان زندگی را با رخص و با ارزم بخضور وارکی گناه و معصیت بگذارونند و گاهی مطرح میکنه اگر یه جایی میخوان تعدادی از مسلمانان تعدادی از جوانان را زندگی خانه بخت فرستان و کسی میخواد حرف خدا و رسول را بیان میکنه بعضی آدم های جایل تعبیر میکنه که مولای سابقه یه عروسی مرگی و نه. هی. یعنی ما باید همیشه انتظار داشته باشیم که ما زمانی متوجه خدا بشیم که عذاب و مصیبت بر سر انسان بیاید نه ما زمانی که در نعمت هستیم شکر نعمت پروردگار را بکنیم و در لحظه خوشی در جشن و در عروسی یاد خدا باشیم تا خدا مسائب و مشکلات را سر انسان دور بکنه نباید انسان انتظار بکشه که آه من قرآن زمانی تلاوت میکنم که پدرم ببینه بعد اونجا قرآن تلاوت بشه عجب این چه عقلیه این چه فکریه که انسان انتظار مصیبت داشته باشه تا به یاد پروردگار بیوفته در حالی که الله تبارک و تعالی در هر حال میگه شما به یاد من یاد سنت های سنیه محمد رسول الله باشید به هر صورت اینجا اگر حضرت مولانا تشریف می داشتن قطعا در این جلسه ساده ولی خیلی پر شرکت می برای تشویق این خانواده های عظیم و بزرگوار و آغل و دیندار و متدین که این مراسم را تشکیل دادن و ما هم به همه عزیزانی که اینجا مراسم اروسی برگزار میشه به خودشون به خانواده هایشون تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که الله تبارک و تعالی این مراسم رو به بارگاه خودش قبول بکند برای در قسمت ان شاء الله خاهران هم عزیزان زحمت کشیدن از دو سی روز اونجا هم را و از خاهران خاهرهای فاضله ها را دعوت کردن که اونجا صحبتی بشه یک یادداشتی هم اینجا داده بودن ظاهرا من هر وقت اینجا میام مردم این محله را آفرین میگم حمت بالایی دارن و اینجا این مسجد را انشالله بیشتر از این آباد بکنن گویا در منزل عزیزی به نام حاج الله مکتبی هم برای تعلیم خواهران اینطوری که در این یادداشت نوشته اهالی کوچه کوثر 16 مکتبی دارن در منزل حاج الله و گفتن که ما ثبت نام میکنیم و خواهران و مادران و دخترانی که در این اطراف و در حوالی این مکتب زندگی میکنن، تلاش بکنن از این موقعیت استفاده بکنن فرزندانشون رو بفرستید تا قرآن یاد بگیرن، مادران و خواهران ما باید قرآن عظیم و را یاد بگیرن، به هر حال الله تبار تلله بهترین خیراتو، برکات خودش را بر این جوانانی که خود به نکاحشون خانه میشه نازل بکنه، و این مراسم معنوی را به بارگاه خودش قبول بکنه زمینه ازدواج سالم و صحیح را برای همه جوانان الله تبارک و تعالی فراهم بکنه و مشکلاتی را که در جامعه اسلامی هست الله تعالی این مشکلات را برطرف بکنه و به همه ما توفیقی بندگی عنایت بکنه و آخر الدعوانا ان الحمد